اللهم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خایران و آله قیقین و طاهرین المعصونین و لعت الجائمت و علا انجائی هم عجمعین اللهم فقم و جمعی مشتغلین و حمد رحمتی و حمد رحمتی امس شد که اجمالا اطل حرمتی در کتاب است و نجاست هم به مجموعه روایات و حالا بعضی هم از خود حرمت استفاده کرده، اون از کدیم که در روایات اهل بیت و ادبه از اهل سنت رو به اطلاقش نگفتن البته دقت بکنیم اینی که ما الان میگیم رو به اطلاق نگفتن در مسئله نجاسته نسبت به حرمت فرق نمی کنیم خب به ساله هون نفس یا نه میتی او حرام فرق نمی الا اهل سنت در ادهی گفتن اون میته حلاله که حالا بعد توضیح شده یه مقدار روایات رو اول راضی به تقسیم بندی میته از باب 35 عباب نجاسات خوندیم ارز شد که تا حالا دو تا عنوان ما داریم یکی عنوان ما لیس له یا ما لهودن یکی عنوان لهون نفسون سائله یا لیس لهون نفسون سائله نفس در لغت عرب هم فکر می دینید حالا در زیاده اون مراتب سبعیی که دارن مراتب اول نفسی ها نفس و روحو نمی اغل و دارن سر و خفی و اخبای لاخی نفس جز مجرداته در لغت عرب جان به اسطلاح مراده به کلمه جانه لیکن استعمال به معنای خون هم شده و در همین نفس سائله در رسان العرب من نشد فرصت نکردم آن اگه فرصت کردم برای من بیاره. در کتاب لسان عرب من در جای که نگاه کردن پیدا نکنم مغنینا پیدا نکنم آن در لسان عرب داره ان ابراهیم نخعی ابراهیم نخعی جوزه تابعینه از های معروف اهل خوفت اونجا ایشون نفس سائله رو به کار برده که شبیه همین رو لا و به اصطلاح الما لا ما کاند لهو نفسون سائله در کتاب دسان عرب نفس رو به این معنی رو خون و اون عبارت هم به همین معنا کرده یعنی خونش سیلان داشته باشه در عرب و این شعر رو هم نقل کرده تصیل و علا حد غباط نفوسنا این کلمه تصیل و, نف... و نفوس رو همه که اینجا مورد از نفوس به معنای خون ماست حد یعنی لبه حدود هم که میگه مرز بزر زبات هم جمعه زباقه لبه یعنی اون چیز شمشیر تیزی شمشیر میگه که بر لبه شمشیر جانهای ما جاری میشه اینجا جان رو به قرینه لبه شمشیر بینه خون گرفتن که ما از شجاعت یعنی ما افرادی هستیم که در رخت مثلا نمیمیری مرگ ما خون ما در لبه شمشیر جاری میشه تصیب على حد زبات نفوس ما نفس ما به این معنی البته خب خود لغزه سال یا مرادش فاض ممکنه به نفس بیاد و مراد خون نباشه مراد همون جان باشه که از مجردات به اسلام در نهج البلاغه در بعضی از شماره‌ها شماره 200 شماره خود در جوز خطبه حضرات سلام الله علیه البته این نکته را منعکس بکنم اون در اصل اول نهج البلاغه که خطبه هست همش خطبه نیست بعضی اون کلمات این دو تا با هم دیگه خلق میشه خود مرحوم رزی میگه من دم. کلام الहू و من قدرت اندم کلام صحبته عادیه امیرالمومنین که بودن جای نشستن صحبت خود خطب غالبا اون خطابه است که اون یه منبری بلندی جایی برای مردم صحبت کردن لذا مثلا این شرشدیه معلوم نیست خود باشه من به خود به شخصیتی احتمالاً کلام بوده هرج از با عبدالله عباس صحبت بوده این اشتباه شده قرار بخش اول نهج البلاغه به عنوان خطبه اون اشتباه کردن نه همش خطبه نیست بعضش هم کلمات عزادیشتباه باشه قرار هم به هر از کلمات عزادیش گایمول شده مثلا خطبه حدیث میشه در شب دفن حضرت زهرا سلام الله ها که در نهج البلاغه آمده توی بعد از این شماره ها شماره در خطبه استفاده شده چیز سر استرجعت الرهین وعقدته و دیل إلا أن يقولوا إنه الوحي صلو و فاضت بین صدري و نهر نفسوب فإن الله و إن الله راضي این فاضت در اینجا یعنی که جان شما درآمد نه اینکه حالا مثلا حضرت رسول وقتی صدره که معلومه سینه است نهرم این آخر گلو یک سوراخی هست این که شطورم نهر میگن چون همین دیگه مخرج همونه نقطه اینو بهش میگن نهر در لغت عرب گلو که تمام میشه متصل میشه به سینه یه سولاخی هست یک سراغی هست چون شطور گردنش در اول شمشیر و چاقو رو اینجا میزنن تو منحر تو خونش که از سر شیر درمون هم که که ماکان این حضار میتونم رفاق بین صدری و نحری نفسو این معنیش این نیست که مثلا خون حضار ریخته چون تیزان هم مثل ساله از بیش رو این نیست که خون پیغمبر روی سینه از سر میرمیش در این شرح نهجو بلاغه نه عبدو, نه عبدو عبدوی معروف مصری داره که اینطور داره در شرحی همین عبارن توی وقتی پیغمبر فوت کردن یک ای مثلا از گروه هزار ریخ بیرون بعضی از اینسان هم همه مثل یک مثل کفی و مراد هسته امیر از اون نفس اینه یعنی اون ماده از گروه حضر در اون جنو هسته امیر همه یک دوستی هستشون این فازت نفس رو که بگیم معناه ظاهران اوه هم آغاز فازت جان دادن تسلیم شدن یعنی شما در بغل من در رویه سیمه من جان به جان ما به حصه تسلیم کردیم عرضم اینی که چون سالت رو با نفس او بردن سالت نفس میگن چون نفس یه جوزه مجرد داده خب که از اساسی پرینکارهای مجرده یه خواست ماده رو ندارده یعنی جسم طول و عرض و عمق و این خب طبیعتا سیالان در مجردات معنا نداره از کنه سیالان این است که یک جز در زمان سانی جایی باشی که در زمان اول نبوده این روش سیالان میگه خدا آب جاری علامت آب جاری همینه غیر از آب جاری اصلا معنای جاری و سیالان این است که جز در زمان سانی جایی بشه در زمان اول نبوده در اونجا نبوده اگر این خصلت بهش شد سیالانه خب نمیگه در مجردات معنا نداره پس بعد مراد از نفس اینجا خون باشه نفس سائله یعنی خونش خب این دو تا عنوان حالا این دو تا عنوان تا اینجا به اینجا رسیدیم که دو تا عنوان داریم که نفس سائله داریم یکی لیسه لهودم یا لهودم از به حدیثی مرحوم کلینی فقط نفس سائله رو آورده مرحوم کلینی مرحوم شیخ طوسی هر دو رو آورده هم نفس سائله رو آورده و هم لهودن ولی لهودن این دو تا عنوان البته بعد از این دو بزرگوار اونی که تا حالات تا لحظه ای که برده خدمتون هستن نفس سائله بیشتر جا افتاده الان هم تو به سالهای عملی ما نشه نفس سائله تا همین زمان ما تو توضیح مسئله هم نشه نفس سائله یعنی کاری رو که مرحوم کلینی کرد بیشتر تو اصحاب ما جا افتاد و به فارسی هم ترجمه که خون جهنده جهنده دافعه است نه سائله سایر سیلانه توی سیلان جهندگی مطرح نیست جهندگی از جریانه خون روان سائله روان نه جهنده حالا این چی تو شده که این تبجیم توی فارسی خون جهنده خب معنی شد که ما در دو تا اشتباه یکی یکی این که اولا جم بوده تو خیلی از توابید دو تا نفس سائله نبوده نفس بحث خون روان نه خون جهنده جهنده این که یک نوع چی داشته باشه اما روان همون اصطلاحی است که برعکس این دو تا عنوان که ما در روایات داریم در این استثناء یه عنوان دیگه هم از روایات داریم که مرحوم کلهی هست اونها رو عبور او ده اون که عنوان نداده فقط مسئله حیوانات پیش شده مراجعه هم باب 35 قرآن از کردن حدیث شماره چهار رو که کلینی اوورده قدس الله نفسه و از کلینیه این حدیث شماره چهار با این سرد و از منفردات مرحوم کلینیست هن محمد ابن یحیا استادیشان که محمد ابن یحیا اتاق از بزرگان و اجلدار قومه هن احمد بن محمد مراد اشعریست که از بزرگان است هن عثمان ابن ایسا من ارز کردم این انتقال میراس ها رو از شهری به شهری فراموش نکنید من یه توضیحی رو چند بار گفتم این خوبه حالا اگر تکرار هم بکنم صد بار هم تکرار بکنیم مفیده هم فرمسان به عالم شیعه تولد حدیث شیعه از حدود سالهای 100 دو سال صد جمان هزون باقی سجا سامول هشتاد تا عمده زمان ما باقی. و مرکز عمده تولد حدیثی شیعه هم کوفه است چیزی نزیده 90 درصد میراسای اولیه ما جسمی کنید تولدی در کوفه است در همون زمان یه مختصری در بسره بود در دو حساب بکنید در همون زمان از او کمتر در مدینه بوده مثلا یک مورد واهدی در مکه بوده دیگه تو شهرهای دیگه ما نداریم نداری کم چیزی نادری بعد از اشعاری قوم خدمت حضرت صادق رضیدین، ای چند تا مطلب درک کردم. خیلی در حد اطرا نیست. جای دیگه هم نداریم ما. پس تولد حدیث شیعه از سال‌های 900 تا حدود 140 تا 150 این کوفه است. از سال 145 که بغداد تأسیس شد، اذه از بزرگان ما بغداد رفتند. و این مدرسه ما اصطلاحاً مدرسه اول بغداد، مکتب اول بغداد تشکیل شد. که در بغداد حالا کشریاب رشد بیشترین ظهور اصحاب ما اصحاب عقلگرای ما هستند حالا شهر بغداد تأسف می‌کنم که بغداد پایتخت اسلام بود همه چیز در برداد بود بیشترین عقلگرای ما بغدادی هستند مثل ابن عربی و عمر مثل برامو و مثل عبدالرحمن و مثل هشام صادق و هشام همه بغدادی هستند از کوفه بودن اصلا بغداد بغداد رشد خوبی الان ما مدیون مختب بغدادیم اشتباه نشه هم. اصلش مشکل توسعه است لکن مرحله تنظیم و تفصیل و توضیح و جابجا جا کردن مال بغداده اضافه است مثل ابن عدی و ام این حدیث شناسان رجال شناسان ابن عدی عمر یونس این مرحله بغداد خیلی موثره اشتباه نشه تا حدود سال 180 190 از سالهای 160 سعد یواشواش علم میاد کوچه خب از سالهای سال, سال نوست یواشوه شده خصوص اشعری ها که اینها عرب بودن و یمنی بودند و تقریبا در قوم مسلط میشن سلطه سیاسی هم در پیدا میکنن اینها علم میاد هم میراز های بغداد میاد قم هم میراز های کوفه میاد قوم این صاحبا ای های ما آمده قم اما خیلی در این زمان نیست بیشتر این مدار زیادی میراس های خوب وصل ما آمده برای به اصطلاح کوفه از کوفه آمده قوم یه مقدارم در همین زمان ها ما میاد به طرف نیشابور تراصل فضل نشازان و یه مثلا با یک همین حدودا به احواز توسط حسن سعید و حسن سعید و علی ابن مهزی ها رو این ها اونجا این مؤزم میراس ما میاد او به هیچی که میشه که مثلا در سالهای دویستو خوردی کوفه ضعیفه و قوم فوقلاد قویه وقت در این به اصطلاح نقل ها یعنی به اصطلاح واسطه ها در این واسطه ها چند نفر خیلی مؤثرا در نقل میراث، اینا خیلی ارزش داره کارش یکی ابراهی محاشم یکی برقی پدره محمد بن برقی یکی از کسانی که خودش کوفی نیست عراقی نیست لکن از قم رفته عراق و مقدار زیادی از میراث‌ها رو برد گفت همین احمد محمد به خاطر این به حرف من زدن ایشون از بزرگان اشاره قم این خیلی روش حساب بکنی مقدار زیادی میراث های عراق ما توسط ایشان میاد و ایشان خودش از ابدیت سیده هست بسیار مرد دقیق و نظریه فوق العاده احمد بن محمد هم ثلته سیاسی و قم با ایشان بوده و هم مرد بزرگواری است مرد مولایی است خودش هم حدیث شناس بزرگی است و خیلی با ظرافت و با دقت متون اصحاب ما رو مثلا این حدیث ها احمد بن محمد قمیه بعد از احمد بن محمد کوفیه عثمان بن عیسا و سماعه به مهران هر دور کوفی هستند ما زیاد دارید اینو خوب درک بکنید مرحوم احمد بن محمدی که از نقالین یکی از, از افاضلی که واسطه از دور واسطه رو به خوبی ایفا کرده برای ادوال های علمی ما از خوف الرب بغداد به کوف و حتی احواز مرحوم احمد ایشون در اهواز کتابا رو سیدی رفتوا داره حسین بن حسین نواقلابشون اومدن اینا واقعا در قم به حال کرده چون هم در قم نشون رابطه بسیار خوب روابطی های بسیار خوب به ترهنگی ما مرحوم احمد نوحمد نیسا ان عثمان ابن ایسا ان سماعه قال سألت عبا عبدالله علیه السلام ان جره تین في جره کوزه وجدفی ها خنفسا قد از سوسکی مرده آل علقه ها و طرف وعنه این نجس نشده بنده دل دشون سوسکی رو بنداز و و امکان اقربن فأرقل ما اما اگر اقرب بود آب رو برید و توزد من ما این غیره سماعه نمیترد روز شد؟ یکی یکی دیگه هم این در کتاب قربل اسناد مرحوم همیری حالا همین حالا این چون بعد بخواهم توضیح بدم من بخواستم این دکتر رو ارزو کنم در این طائفه سوم عنوان نداریم علوی شنشچی همدانی نذاره توش دم سائله نفس سائله دم فقط موردیه بین فرق بین سوسک و عقرب سوسک و کژدم مثلا در کتاب قربل اسناد تن عبدالله ابن الحسن ایشان از مرحوم همیری توسل عبدالله ابن حسن احتمال داشت علوی اصلا چیزی بر ان شاء عبدالله ابن الحسن هم جدیه علی بن جعفر از کردم من قراراً مداراً مرحوم علی بن جعفر پسر امام صادق مسائلی رو از برادرش موسی بن جعفر نقل کردم براتون به کتاب مسائل این کتاب و تانحیش دیگه امروز اینجا من وقت این کار رو ندارم که طولانی یعنی اگه بخوایم حقشو رو انجام بدیم باید دو سه جلسه درس راجع به کتاب علی بن جعفر رو نسخه او صحبت بکنیم ما الان فعلا از این کتاب چند نسخه در اختیار ما هست یکی هم نسخه عبدالله ابن این عبدالله ابن حسن نبی علی ابن جعفه یعنی عبدالله ابن حسنه نبی, علی ابن نبی اول شما هست پسر حسن حسن پسر علی ابن جعفر. ظاهرا بعد از آمدن حضب معصومه به قوم سلام الله علیه ها ادده از سادات بنی حاشم حس که مثلا قوم از زیاد داره به اهل بیت اعتقاد دارن به 사다ت اینا قوم اومدن من جملہ همین عبدالله بن حسن این من اخیرا در تاریخ قم سابقا نمی دیدم عبدالله بن حسن که علی بن جعفر ایشون میل قوم و لزاه همیری هم از ایشان کتاب درغم میکنه و ایشون که در قم دلایلی از صادات محترم بودن کتاب جدشون علی بن جعفر هم درغم میکردن مرحوم همه هم نسخه رو ایشون کرده که در قوم یک نکته ایرام ارزو کنم بعد بود چون خواهیم کرد، ظاهرا از این کتاب تالیف قب این طور معلوم میشه که اولاد علی بن جعفر و احفاد ایشان های ایشان یا خاندان ایشان که قب آمدن و اونها علوی میگفتن علوی در اینجا نصد به علی بن جعفر نه نصد به علی ابن عوی تاله همین عبدالله حسن علوی میگفتن علوی نصد به علی بن جعفر اینیه و این کتاب را از کردیم توضیحاتی داره حالا خود علی عبدالله حسن بعد نبوده اجمالا خیلن توصیق درستی در کتاب نشد سال سعلا موسی بن نجهتر علیه السلام از کردم من اما به کتاب خیلی کم صحبت کردم تنبه میشه و اصلا سواتی نکردم اینشالله راجع به احتمالات و بحث کتاب و خوصیات و مسقه مختلفش و تاریخش و وجود کتاب میشه اسماییلی ها و پیش ما و پیش زیدی ها و خیلی خیلی صحبت داره یکی دوزا نیستیه خیلی من مختصر صحبت کردم اقاه و موسیم نجافه علیسان انهل اقربل خمتسا و اشباه ما کجم و توس و نزیر اینها یموت و جره جره که کوزه هست اما تو بزرگ اما دن دن خومه دن خوم رو میگفتن دن مختصر میشه که هم گردن من گردن اون دن به معنای اینه اگر دن هم هم میوشده خمرو دن در شعر فارسی هم حد دن در حنه خمره در حب به ما این ما در لغت فارسی اروام هم خو... حب میگن توی قومی هم روزم میگن هست؟ بزرگ هست کدهای بزرگ هست سفال نداره سیما مثل کده هست ترشم بازی توش مثل سرکه میوزه اینجور شیده خم دیگه مثل بازه خم حب و خم و به اصلاح خمره هیگه همه هست پس معلوم شد تو مسئله اغرب رواید موسا آرزه این تا اینجا حالا من چون ندیدم نمیدونم چون این دستگاه های چیز رو نداریم دارم نگاه نکنم این دستگاه های چیز این کامپیوتر و این کتاب منه کتاب اسمش رو که نارم اختحال وسائل خوبه اما نیدم تارید داره ببینید این روایتی رو که الان برای شما از سماعه نغره کنید از سماعه ابن مهران این رو الان ما از کتاب کافی نغره کردیم و دیگه حالا درستان ترکیل کردیم دارم یک اجمال میگه یکی از مشکلات مرحوم صاحب جواهر صاحب وسایل اینه که ببینیم حالا کارش شریشون کرده یه حدیث رو که استخراج نمیکنه دوی از همه مصادره ش استخراج نمیکنه. مثلا اینجا الان حدیث رو از کتاب محمد نیاگو وارد مطرح چیزی که دیگه از کسی دیگه نقل کرده. اما همون حدیث در کتاب وسایل در کتاب تجزیه هم هست. من نمیدونم احتمال میدم اشکال از تجزیه دیگه نقل کرده چون دیگه وقت نکردم مراجع فردا گاه مراجع در وسایل ازش پیدا کرده به نهایت خامه. در کتاب تهذیب جلد یک صفحه 223 و, و, و اخبرنا شیخ ایاله الله مرحوم شیخ مفید قدس الله سره انا قاسم جعفر ابن محمد از ابن جعفر محمد ابن ان محمد ابن همین محمد بن یحیان احمد بن محمد عن عثمان ابن دقت کردیم یعنی؟ بعد داره که قال سالت عبا عبدالله انجرد مجدفی آخن فساق المات قال علقهی اینجا همینطور داره از ماتت خونده احتمالا با این فقط جایی نعرف کرده باشه سال و سال من چون وقت نکردم به و مراجع مراجعه کنم این آقام که این چاپی که من دارم اگه چافه این آقام آل... ربانی داشته باشن ربانی اشاره میکنه که جای دیگه حدیث هست بله قال علقهی و توضع من و انکان اقردن فع ما و طرلب من ما انقیه بره این اين هم همین و نظرت جلد ماهو و انعان فییه ما آن ما و فی اهده ما پدر لا ازید از یوه ما او و لیث وعل ما ان غیوه قال یا حریق ما و یهطر هم تنجیب علم اجمالی که که از عدللهتنجییب علمی هم عیسه در بخش جنجب اجمالی چون میگه انعان فییه ما ما و رقف اهده ما پدر رو اسافتی اوثات لایدی ایهما ولیسه عقد علی ما غیره قال یوهریغه ما یوهری خودش باب افعال ما علی خلاف اراقه هم داریم یوریغه هم داریم یوهری که ها ت زیادیشون هم داریم دو چند تا آقا کی نگرباست سماع یک مرحوم شیخ نرس شیخ بعد از این بعد از این به اصطلاح روایت سماع این حدیث و هم دارند بله. نقل کرده به سرد دیگری ما اخبرانی به شیخ صفحه 230 ما اخبرانی به شیخ ایلیه الله تعالی ایشان بله این طور داره ان احمد بن محمد ان عبی مراد از احمد بن محمد بله مراد از بلده. مراد احمد احمدین محمد پسر ابن الزلیه که دیروز آموزش کردم. مراد پسر ابن الزلیه. آن آبی محمد ابن الحسن تأیید کردم. محمد ابن الزلیه معروف. آن احمد ابن محمد مراد احمد ابن محمد ابن عیساز. درست کردی؟ سال دیگری. آن شیخ آن احمد ابن محمد آن آبیه محمد ابن الحسن آن احمد ابن محمد احمد ابن محمد اول پسر عبدالدیده احمد ابن محمد دوم احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری قومیه همین که الان گفتیم به اراغ رفت انل حسین ابن سعید در اینجا احمد از حسین سعید نعب کرده من ارز کردم مرحوم حسین سعید رحمه الله در احواز بود خودش و رضایش حسن و توسط اصحاب ما اصحاب بغدادی ما اصحاب کوفی و غیر کوفی میراز کوفه و بردادشو نرکرده ان الحسین و سعید ان عثمان ابن ایسا سند از یکی میشه. ان عثمان ابن ایسا ان سماعه این همون سماعه از ابن مهرانه ان عبی بسیر ان عبی جرفان این فرقش اینه اضافه داره ان ابی بسیر ان عبی جرفان من عمدن این رو اوبردم که بخونیم یعنی عمدن آوردم که دفت بکنیم ال سألت و آن خان فصل تقعو في الماء يزام ما ام؟ قال نعم لا بس. قلت فله عذرا قله عرق هو. حالا ما اعتقادون اینال میذنپشون آیم متعارضیم بحث نشوند. باید نمیدونیم که این جور احادیث است. لحتم دوست احادیث عرض باشه. چون مقاله و هدف خلاصه ابدن نیستیم و دوست حوار جام بکنیم. احادیث ارز نه که ارزش اینو در حفظ همین کتاب رو برداشت بخونم که این دکتر ان شاء الله عرضه کنه. که تجلیش گفته نشده باشه. احادیث ارز احادیثی هستند که راوی این از این که از ائمه شریفه به امام معاصر خودش هم عرضه می‌داره. عرضه در یک بابیز خودش و یکی از شؤون ائمه متأخرین ما مثل عزاد و زواد جاذم ما بعد عرضه روایات ائمه متقدمین اگر دیدی صبغه‌ای به متأخر از صادق هم بود مثلا فرض شد مثلا با مثال محمد بن مسلم از یک کسی از امام باقر مطلبش اینه که همون مطلب خودش به امام صادق ارزی می‌دونه می و من عرض کردم روات ارض اقسام داره یک قسمش احتمال روات ارض الان ما داری مثلا گفتم قلت رضا رو بیان آباء که از عرضه اون اینطور مثلا خوب شدی رواضه ارزی که علمی یعوب هم نمیخواد روشنه ما به نظر میدید که اینها هم احادیت ارز باشیم حالا معیار این قسم چیه؟ معیار ها، معیارش اینه که سماعه ان عبی برسید ان عبی جعفر سوال کرده یعنی سماعه یک واسطه از ابی جعفر خود سماعه در این حدیث دیگر ان ابی عبدالله مباشره پر هم یقیقی هست به احتمال بسیار قلی این رو هم محب... امروز کتاب تحضیمان داره همی جهر چون اینی که هم حتماً بطائل داره اما حالا کجا باید نشون نگاه بود آقای خودشون اگر دیدم دادن هم خبر بدن با این کامپیوتر میشه پیدا که من نگاه نکردم و این مثال بسائل که کتاب کتاب خوبیه مثال بسائل مهمای خدا رحمتش کنه آقای که در مشهر بود آقای مصطفی بیرزان الله که خیلی کتاب خوبیه این مثال بسائلشون حیف ناقص رویدان مرد دقیقیست و متلع یعنی اگر آقایین بگردن گردنه حتما این همه هست تو وسائل اما کجه وسائله من نمیدونم کجه وسائله این روایت دوتا شد مرشن شد به نظر ما دلیل برای عرضش اینه که در روایت ابی جرخم هم داده سوال از سوس بعدم اغرم همین دو سوال هم تو روایت سماعه نبی عبدالله داره به یعنی به عبارت این اخرام سماعه ابن مهران رحمه الله از ابو بصیر مطلبی را از امام باقر چیده خودش میاد همون سوال رو هم به عین نزد امام صادق میکنه پس بنابراین معلوم شد که ما در مسئله اقرب سه تا روایت داریم از امام باقر که تف عرق از امام صادق داریم همون هم داره که تف عرق بود تو سماع رو میکنه از امام صادق داریم که اشکال نداره این یک زرافتی داره. گاهی اوقات ما روایاتی که بررسی می‌کنی از یک امام مختلف نظر از یک امام مختلف نقل نمیشه پس ما از امام باقر الان که داریم مختلف نیست درباره عقرب. گفت فرید. از امام صادق خود سماعه همون راوی از امام این البته اشکالی نداره ما توی به این یکی کس من توی فواید حدیثی رو ندیدم امام طه را، مجبورم یه مقدار بحثه رجالی رو اینجا بیاریم. دقت کنید، از امام صادق داریم، از امام باقر داریم، شعره. از موسی بن داریم که لابه است. چون که لابه بود، عمر بود، اونجا که فالح بود. دندمدار جرر داره. از موسی بن در مسائل علی بن داریم، سلت و انل عقرب و الخنفسا و اشوای ما. گفت لابه. پس از امام باقر تا آرز نداره فرق بین خنفصا و اغرف سوسک و کجدوم. از امام کاظم داریم که اونم تا آرز نداره که این دو تا یکی هم از امام سالمش تا آرز داره چون در یک روایت داره از امام سلم راز سماعه که بین سوسک و اغرف فرق گذاشته در یک روایت داریم بله در یک روایت بله بله عرب بله بود بودن بله حالا اگر بله روایت امام صادق بله روایتی که دارید و شماره سه از باب سی و پنج این از منفردان شیخ توسی بود شاید هم مرحوم کولینی نغلکده رو همین هست از حسین سعید این ابن سنان که محمد باشه این ابن موسخان که عبدالله باشه قال قال ابو عبد الله ليس كل شيء بيس خطه في البئر ليس له دم مثل العقار بل خنافه تو اشوازاله طلاق است روشن شد پس از سه تا امام پاشو سره هم از امام باقر تعارض نداره فرق بین اقرب و خنفسا از موثن جعفر تعارض نداره که فرق نمیکنه اقرب و خنفسا و فتواه اصحابان همینه که فرق نمیکنه. <تصفيق> از امام صادق دو تا شد یک عنوان لیسه لحودم اگر عنوان لیسه لحودم باشه تو کتاب هم آمده اما در کتاب اممار اسم اغرب نیامده من بیدید تواف رو جدا کنند به همین که چون بعض از زباد در خصوص یک عنوان اختلاف دارن در روایت هم همینه سوئل ان الخنفسا و ذباب و جراد و نمله و ما اشبه ذلك اسم عقرب توشن آمده امام فرمود کل ما ایش له فلابه فلا بست اما تو روایت عبدالله ابن مسکان داره کل شيء یعنی از خطبه در ليس له دم مثل عقارب و خلنا بزوا اشبه ذلك فلا بر اساس الله علیه و محمدی